دربار حضرت زهرا سلام الله ها یک بار میخوره کتاب نوشته اسمش رو نم روشم نوشته دراستن و تحلیل یعنی این کتاب پژوهشه دیگه صرف نقل نیست ما یه روایت داریم که مصحف حضرت فاطمه برای رفع حم و قم و قلب حضرت زهرا بود برای بعد از پیغمبر اکرم یعنی بعد رحلت پیغمبر یک روایت دیگه صحیح و سند داریم که به املاء رسول الله و خط علیه نه اگر به املاء رسول الله باشد و خط علیه که نمیتونه برای بعد از مرگ پیغمبر باشه که شما مثل اون بنی خدا فکر کنید که گفت که شب عروسی حضرت علی ابن ابی طالب اسماء دستش رو پیغمبر دست حضرت فاطمه را گرفته بود پیغمبر هم دست علی را گرفته بود حسن و حسینم رو مادرش را می‌رفت یکنگ خدایی گفت، حد اینا هنوز عروس نکرده بودن، چجور حسن و حسین گفت، عوام نفهم، نور حسن و حسین، نور حسن و حسین که تقل از خرقت بوده، مگه اینجوری فکر کنیم؟ و یه چجور چیزی میشه؟ وقت جالبه، این آقایی که نوشته دراستتون و تحلیل این رویته آورده ورده، و نوشته و یستفاد من منها امور، یک، اول روایت برای رفع هم و قم حضرت زهرا بود دو مصحف مشتمل بر حقایق فلانه سه چنین چار چنان پنج حضرت رسول الله صلواتم فرستاده صلی الله علیه و آله و سلم املا کرده علی بن ابی نوشته در فاصله چار خط یعنی این مرد بزرگوار اینقدر این مخ مبارک به کار نمداخته که شما سخت قبل نوشتی که این برای هم نقم دل زهراست چجور بعد نوشتی این کتابت رسول اللهست خب من این مصحفی که نوشتم چیز کچلویه و خیلی هم ازش استقبال شده خیلی روش فکر کردم به این نتیجه رسیدم که رسول الله در اینجا هست جبرایله پیغمبر نیست اصلا بعد دیدم که علامه مجلسی خدا رحمتش کنه و ما ادراک علامه مجلسی تو بهار داره. بهار داره که این رسول الله در اینجا جبرائیله و این رسول الله در اینجا پیغمبر اکرم نیست. و بعد کل آیا آورده که به ملائکه رسول الله گفته میشد، روایت آورده که به ملائکه رسول الله گفته میشد. خوی یه ذری باید فکر کنی و تحمل کنید دیگه